هم کاری نمیکنه اون عاشق روناس شاید با هم بحثشون شده باشه ولی مطمئنا این چیزی که شما میگین نیست خنم پسرتون کاری کرده که دختر من چند روز پیش تو شرکت حالش به هم خورده او شانس برششانورد حرفای به دخترم زده که لایق خودشه این تقصیر منه که بهش اعتماد کردم و مهلت بهش دادم همون اول باید قلم پاشو میشکستم تا دیگه دورو بره دختر من نیاد حالا شما اجازه بدین بیاد من نپرسم ازش ببینم جریان چی یا خورشم سلام آقای نظری پسر یه بیشعور تو کردی من همین جور میستم تو با اصابه روان دخترم بازی کنی با زندگیش بازی کنی خانم پسر شما با رفتارش نشون داد که بوی از آبر رو ای هی من تو باید دنبال یه آدم مثل خودت میرفتی مثل خودت چی براش؟ مگه شما نمیگفتی قبلن ازدباش کرده مخالف بودی حالا چی شده یه ها طرف شدی؟ تو چیز شده یه یاد مخالفت من افتادی؟ مگه از اول نمیدونستی؟ م... من موقع حالیم نبود ها پس این مدت که ناراحت بودی و تو فکر بدی برای همین بود دروغ میگی؟ چه دروغی؟ از چشمات پیداست که ماجرا یه چیز دیگه است کدوم ماجرا؟ پس چرا رونا اینقدر نگرانت بود؟ اگه شما با هم مشکل داشتی اون باید میفهمید دیگه؟ اون چقدر سوال میکنی؟ خستم کردی به خدا؟ شرکت مرتزم از سراغم چی؟ گفت من میدونم که سامان قاتل نیست حرفی از من نزد؟ ممکن میتونه تو برادر منی ولی گفت یه مدرک دسته کرد دوست داشه که ثابت میکنه سامان قاتل نیست گوه اگه بخوایی میتونم کمکت کنم سامان نجات بدی پول میخواد تو چی بهش گفتی؟ قبول نکردم گفتم آقای خودش همه میفهمه ولی ما میدونیم که سوان به همین راحتی نمیتونه تبرهشه مدرک محکمی عمله ایش ندارن با پیشمان دعوا شده که مدرک حساب نمیشه آره ولی ما باید کمکش کنیم چه کاری از دست ما برمیاد شدی؟ میخوای من برم خودمو معرفی کنم؟ نه ولی میتونیم برش وکیل بگیریم برای همی من به پول احتیاج دارم خواهیم بری هست که باید سر بزنی تو سفری که بخواستی بری چی شد افتاد عقب یه سری کارهایی داشتم که باید انجام میدادم تو بجز مصافر کشی کار دیگه یا میکنی نه از چه کاری؟ خونوادگی. آ. راستش تو فقط به پدرت با من صحبت کردی. هیچ‌وقت فرصت نشد بشینی با هم صحبت بکنیم راجع به خودونو وارد. چن تا خبر دار من یه خواهر دارم و مادرم از تنها ما پسر خانواده‌ای. داد. اسپال زندگی، سابی، دوشه. کجا زندگی میکنی؟ این محله ی اول سامان ناراحتی ولی تقصیر من نبود آه. کارا خوب پیش میره بله چند تا سفارش داشتیم که خوب بوده دیگه برای پرداخت دستمزد کارگرا مشکلی پیش نیومد. به جای چک نقدی پرداخت میکنیم چون دست چک و آقا پشما بوده اینجا کارگر کم نداری چطور یه نفر دارم که میخوام بیارم اینجا استخدامش کنم هر چه سلام این انصار به من کمک کرده می‌خوام با آوردنش سر کار کمکاشو جبران کنه یه دونه از این فرمای استخدام بیار بده پرش کنه فرماتلی فرما بیار آقا من خودم کار دارم اگه کار داشتی پابند من پیر مرد نمی شدی. آره ولی اما حسن من به کار اینجا وارد نیستم یاد میگیری کار اینجا زیاد سخت نیست حوضش هم حقوق مایانه داری هم بیمت بکنیم بده؟ اون فرما رو بیار چشم اینجا کاری نداری نگران توام که میام مگر نمی اومد نمیخواد نگران من باشین اگه نگران من بودین میگفتین آرش چیکار کرده گفتم دیگه اسمو کرده نبر حق نداریم بهش توهین کنیم علی کی دلسوزی میکنی؟ این آدم این آدم چی بگین دیگه چی میگفت جلوی در؟ دور آرش رو زندگی تو نابود نکن زندگی من به خودم مربوطه یا میگی آرش چیکار کرده یا زمین می‌ذارم پلیسیه تو دارد سرفتده می‌بینی؟ هیچی واسه گفتن نداری. همه نفر فقط واسه بازی دادن ام بود. من تو رو بازی ند. پس بگی چی کار کرده؟ آدم گشته، کاتل کرده. میفهمی؟ آدم زندگی تو نیست آید نه تو نود نکن جواب منو ندیم پرسیدم چی شده همون که برات نوشتم کامیاد چه مزخرفی گفته؟ یه پارک خودم اومدم اومدم نمیخواستم این اتفاق بیفته شادیو تهدید کرده بود که صفته هاشو میذار اجرا و میدازد من فقط رفتم صفته ها رو ازش بگیرم نمی‌خواستم درگیر بشه. نمیدونم چرا این شده تدفه کامیار از کجا میدونه کسی اونجا تو شرکت کامیار در اومده کیف هم افتاده بوده اونجا نمیدونم چطوری دادتش به کامیار یعنی الان کامیار علیه تو مدرک داره پس چرا اینجایی چرا فرار نکردی خواستم برم اما نتونستم نگران پدر بجماله اگه می‌شناسیش. به خدا مریضه. تنهاست. اون موقع که پژمان تو کما بودش، که چند بار بردم رسوندمش. بعدم نمیدونم چی شد که شدم کمکش. چیکار کردی آرش؟ پلیس چی؟ میدونه؟ یه مزمنه به قتل داشتن که دیروز گرفتنش. نمیتونن همینطوری یه آدم بی گناهو نگه دارن که... بلاخره اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشه آزادش میکنن میره. به تو مجرمی. آرش. فرار کنی من کمکت میکنم فقط نمون اینجا خب یه چیزی بگو گفتم که خواستم برم اما نتونستم آره دلیلش هم گفتی ولی هیچ فکرشو کردی که بفهمی تو کی هستی چی میشه تو کامیارم هست هر طور شده زهرشو میرسم همینجا بگو بهت گفتم بیا بیروم مرده استابی مقرد نبود رانو از ماجر خبر دادنش تو برای چی رفتی گفتی؟ مجبور شدم پس ماده سراغت اونش اصلا به تو مربوط نیست تو از اول معلوم بود بود دوماده چیستی؟ تو اون دنبال دونبال دو دوتا آدم این کنده شخص چرا رفتی به مرتزا داره دیگه؟ نمیدونی؟ نمیدونی دونی اون مرتضی هنوز داره بعد میکنه برو بورو کیفم ورده بیاد. قرارم این نبود. من اون دفعه بهت گفتم من با توش قراری ندارم. بورو کیفم بیاد. من اصلا بودم. نرفتم پیش پلیس. آقا من به تو اعتماد ندارم. برو کیفم ورده بیاد. بچه با تو چه چه من نگاه کن. اینو تو کلت فرو کن. کیفو بعد از عقد با رونا بهت می‌دم. این دیگه اینجا پیدات نشه. بورو برده بیار دیگه Hayır! Donma! خامیار سلام سلامون مرز مگه قرار نشد دیگه با این پسر کاری نداشته باشی؟ کاری نداشتم که خبر دارم رفتی سوراخش باسه اخ من رفتم آره تو رفتی مرتزا بیچارت میکنم ببین بیچارت میکنم میفهمی؟ خامیار به جونتوم هستنگه آرش رو ندیدم کجا رفتم سوراخش؟ این مزخرفاتو کی گفته؟ خود آرش گفته اون بهت گفت من رفتم؟ ببین مرتزا من با تو یه اگه بفهمم بخوای زیرش بزنیم بلدم با چی کار کنم بیچارت میکنم باشه تو آروم شلا خیلی محکرم. نمیدونم چه یه همشه کاری کرد. یا بدون مقدمه فرم استخدام گذاشت شدن. شاید میخواستم محبت این چند وقت تو جبران کنه. نه یه چند بار دیگه هم راجبه خونمون رو خونه بودم و ازم سوال کرد. یعنی ممکنه شک کرده باشه؟ بستم. تو فرمو پر کردی؟ چی نوشتی؟ یه آدرس علکی و فامیلی علکی و هم گفت فردا بیا مشغول اون نمیتونی بری که حتی بحانه جور کنی رانا میگه بذارم برم اگه اونم فهمید؟ تو بهش گفتی؟ من نه همیار بهش گفته تو نه بخواه کنی آرش؟ نمیدونم این بلا تکلیفی تو از همه چی بدتره خیال میکنی آسون آدم بخواه تو این شهر تصمیم بگیره؟ نه کی گفته آسونه ولی بلاخره چی؟ تهش چی؟ چی کار میخوای بکنی؟ تو من نیستی بفهمی من چی میکشم آرش جان برو خودتو معرفی کن از این وضعیت خلاص چی لاغل اینجوری وجدانت راحته من نمیخوام من نمیخوام ادام شم میفهمی یعنی چی نه کی گفته تو قراره ادام بشی؟ حکم قتل چیه؟ آب میریم ازشون رضایت میگیریم اد نداد؟ همجه من بودی همین کارو میکردی یک کسی از راه رسید با احساساتت بازی کرد بعدشم رفت خب طبقو داری من چیکار کنم دست بذارم روی دست با شما آرشو دیدین مادر آرشم دیدین اصلا آدم های بدی نیستن حتما یه اتفاقی افتاده که آرش اینطوری رو عوض شد هر اتفاقی که افتاده باشه، نباید با تو اینطور رفتار میکرد اگه به تو علاقه داشت، باید میومد به تو میگفت ببین دخترم به صلاحت آرش رو فراموش کنیم من و مادرت نگران تویم این اتفاق نباید زندگی تو به هم بریزه میترسیم مثل قبل دچار افسردگی بشی من فقط دنبال دلیل این دلیلش هر چیزی که میخواه باشه مهم نیست فراموشش کن شکر خدا خب وضع وضع شرکتتون هم که بد نیست باید هر چی زودتر خودتو جمعوچور کنی تمام تمرکز انرژی تو بذاری روی کارت زندگیت راناجان من نمیخوام تو رو ناراحت و پشمور دربینم خوشبختانه آرش خیلی زود ماهیت خودشو نشون داد قبل از اینکه اتفاقی بیفته همه چی تموم شد مطمئن هستم که تو اونقدر عاقل هستی که به حرفای من نیاز نداری و دیگه خودت میدونی که باید چیکار کنی از فردا با انرژی کامل برو سر کارت خیالم راحت باشه رونا دستش تم کنه؟ از رونا چه خبر؟ هیچ؟ یعنی کللا برای همیشه گذاشتیش کنار؟ من که باور نمیکنم دیدی که پدرش چیکار کرد؟ البته من خودم قتم همین بود. دیگه هم نمی خوام چ اسم رونا رو بشنوم. شادی کجاست؟ گاس؟ چیزی شده چه میدام افتاده دنبال وکیل برای سامان یادش رفته که چقدر بازیش داد دعواتون شده برو باهاش حرف بزن من یکمی تند رفتم ولی نمیخوام از حرفم برگردم چشم خیلی کردی. آره با دوستا نفر حرف زدم. ولی آره خیلی گلوم میگیره. هرجور حساب میکنم پولم بهشون نمی‌رسه. بای آرش مامان فهمید قیامت به پا کرد. آره بهم گفت. حالا تو ازش بد دل نگی. نه. که سامان بیگناه. کسری تا از اینجور کن رای دادش مرسی بردا می کرد نه با کجا بیا؟ آقاسم خیلی پیگیره اینه که تو که مشغول کار میشی چی میخوای بهش بگی که باونه ی جور میکن خیلی از این مرتضا میترسم اگه دوباره میخواست بیاد ازم پایش بگیری چی کار کنن؟ هیچی بگو هرچی داری برو بده به پلیس. نه ترس مدرکی دستمون نیستش سراغ پولیسم نمیره چون دومباده پوله ولی شادی ببینه ترسیدی دیگه ولد نمیکنه ها. هفت که به آقا قول دادم برم شرکت در اینه اصلا دلم نمیخواد برم سلام دخترم حالت خوبه؟ امروز آرش اومد ماهی سرا؟ نه اومد؟ بهش گفته بودم بیاد اونجا مشغول بشه نه نه نه نه مهمی نیست میتونم یه خواهشی بکنم؟ پرونده استثمامیشو وردار به میتونی آدرسشو به من بدی؟ گوشی دستن. عجل ایم ندارم آه. بده کردی خب آروم بگو من برمیزم خب آمدن فکر کردی؟ کدومش ناد؟ کمک بستم گفتم که اهل دادن نیستم اگه جونش برات اهمیت نداره چرا؟ ولی از را قانونش این یارو پسر که با آقاست اومد اینجا کیته. کی ته کی خوه تو با مراه نزن امونی که اومد اینجا هیشگه. دروغ میگی ایش دروغ نمیگم اگه بود میگفتم از کجا میدونه راجب اون ما مو با هم حرف زدیم کیته گفتم که هیچکی من راجب این موضو به کسی حرف نزدم من مدرکی دارم که نشون میده اون تو ها به پلیس بگی هر این که دست من نیست پس چطوری میخواستی به سامان کمک کنی تا اگه سرکی سر, سر شورو میکردی ما کارم ولد بودم. اون فهمیده من با تو حرف زدم. از کجا فهمیده؟ نمیدونم. من نمیشناستمش. دروغ میگی. دروغ نمیگم. من... هر چیم به شما بگم شما باور نمی کنی. نمی‌کنه کجایی؟ الو سلام بهتری خیلی نگرانت بودم تو شب اصلا نتونستم بخوابم برای همین نمی‌خواستم بفهمی دیگه بارش پررشد تر اینجا موندم برات خطرناکه <تصفح> نمیدونم. نمی‌تونم تصمیر بگیرم به خاطر رفتار روزم عذر می‌خوام. فهمیدم برای چی کار کردی ببین من نمی‌خوام کوچکترین اتفاقی برای تو بیفته. آرش تو بعد صورت رو من می‌گفتی. چجوسم کمکت کنم؟ ببین من انقدر دوستت دارم که حاضر باشم هر کاری می‌خوام بعدم به شما تماس بگیرم. غلطم بود. و کی حرف می‌زدی؟ شرکت تبلیغاتیه. تو از این قدر راحت من دروغ میگی؟ اگه میدونی چرا میپرسی.ロナ رونا، هست داری چیکار میکنی؟ چیکار می‌کنم؟ این پسر به دردت نمیخوره دیگه چیکار باید بکنه که تو ولش کنی؟ جوری که فکر میکنی نیست. پس چه جوریه؟ اومدی اینجا هرچی از دهنش در بهت گفته. تو بگو که چیه؟ خیر از که دیگه تو رو نمیتونم بگم. آها. پس یه رازی هست. رامین اصلاً حوصله نداره. من دارم. همین الان میرم دم در بگم بگی من بچه‌ام که با اینطوری حرف میزنی. آره بچه‌ای. اگه بزرگ شده بودی که توف می‌انداختی تو صورت کسی که اینقدر تحقیرت کرده. من آرش دوست دارم. اونم منو دوست داره. همین مهمه. فکر یه دقیقه با صحبت کنم. من از وقتی که این موضوع رو بهت گفتم خیلی حالم بد باید زودتر می‌گفتم. نمی‌خواستم از من ناراحت بشی. می‌دونم می نگرانی ولی من اگه می‌خواستم کاری بر علیه هاش بکنم، تو حالا کرده بودم. من کار دوم نظرم. چون گفتم کار دو. مرتزا میخواد از شادیه خوازی کنه فهمیده ارتباطی بین من و شادی هست از همه بدترین که قاسم به من شک کرد تو از کجا میدونی؟ هر دشمن بورد شعر کرد فرما استخدام گذاشت شدم گفت آدرسم و اسم بینیمیسم من همه چیز هلکی نوشتم علم که به شادی زنگ زده آدرسمو گرفتم خب حتما تا الان رفته فهمیده آدرس الکی. حتما این کارو میکنه واسه شاید بری سراغ پولیس نه بابا فامیلیه منه که نمیدونه اکسی ازم نداره چی میخواد بگه به پولیس حال نباید ریسک کرد من میگم هرچی زودتر برو میخواستم برم ولی الان واقعا نمیدونم باید چی کار کنم یه بیگناه جای من تو زندانه ولیش هم رفتم آخرش که چی خب یعنی چی؟ علم میخوایی بمونی لو بری؟ بعدی فکر بکنیم این مخمست نجات پیدا کنی من میگم شاید فاسم ببخشه اگه نبخشه چی؟ الان بیشتر نگرانه سامانه من خودت تو زندانه اگه مدرکی علایهش پیدا نکنن آزادش میکنن تو نگران نباش. من وکیل آشنا دارم پولو کجا بیاریم پولو حرف میزنم دست کمتر بگیره پولو شعور میشه میتونیم سراغش. پاشو پاش از عالممیم دفترش من از اون میره سونامد خونه. باید سلام بگیرید. چی؟ گفتم باید زنگ بگیری زنگ بگیری من از درس خلاص میشم. امیش صدافت کردم بیای اینجا چون کار واجبی با داشته. نه اینکه میای اینجا درس هم من. نه مرام حامی دیگه. حال دی من که شدی اینجا برشی؟ چی؟ قرار بود با هم دیگه بریم یک چای. این وضعیت چه مهم نیست چی چی مهم نیست؟ نمیتونی راه بری درد میکنه میفهمم خب تا اعمال میکنم دیگه. تازه واکرم دارم داراتو مرتب میخوری؟ یادم بمونه آره به پونه گفتم که به یاد کنه به پونه یادش بمونه من یادم نمیم اترازه تو <تصفيق> ببرم کسری که همیشه اینجا بود کجا سرم؟ دار تو را وسط همه چی رو میگن. اینجا اینجا میگفتی عصای دستتی همه کارات انجام میده چی شدی دفعه بهش مشکول شدی جلاله اسم کنم یک چیزی رو از من مخفی میکنه به خصوص تازگیابش گفتم شما رو کارت تو بده سنرساشو برزم تو اسلامت ندارد شکم بیشتر شد نمیزم ولی دلیلم نداره همین دنبالش بیافت البته خوب رو بفهمی کیو از کجا آمده بنام که دعای منظر بده بنام که تنهایی اگه خود رو نکرده یه وقت نقشه داشته باشه ببخشید آقا جا. شما میدونی کچه زنبخ کجا؟ سرچی میکردم پیدا نمیکنم من تو حالا کوچه ندیدم اینجا شما مال همین مهنده این؟ بله نداریم کوچه به این هست، مطمئنم ممنون ممنون چه زنبقی وجود نداره از هر کی پرسم نمیدونه شاید شاید ما ندیدیم شاید هم محله اشتباه اومدیم او با مطمئنم همین محله هست اصلا چرا بادام چی تو گفته باشه نمی‌دونه چرا نمیری پلیس جلال استو بعیده یعنی چه بریم پیش پلیس بگیم ما یه خدمت بار کرده ولی اصلا چه اشتباه اومدادی حتما یکی کفشش هست که این کارو کرده من جای تو بودم همین الان میرفتم پلیس. ها نه پس مخواه چی کار کن هم تلفن بزنم به خودش از دهن خودش بپرسم که چرا این کار رو با من کرد این که بهتره که از آدم کشته حکمش اعدامه شما فکرین با کی طرفی به شما ربطی نداره چرا اسکوپامی رو آدرس دو من توو من اش من کارت پیرمندو دت مرگش میکنی یا این پسر چرا پرروه چرا ولکون مجره نمیدونی من شکایت مهریار پس کرد. چی داری میدونی سر خودت میای اخه این چه روزی افتادی واسه چی دوباره رفتی باز خام خام بدون اون که پیش کشته کیه تو هیچ ربطی نداره میخوام خلاص شم از این مصیبتی که توش گرفتار شدم توی تاریکی شم آه در جریان بود زل زدم به آسمون عینکم دودی شد با صدای زنگ در یه بارون آرید دستای خون پر از گل داودی شد ماه از راه رسید روی را رسید ریل راپل نشست دکمه های قلب من دونه دونه گل شدم گفتم این یه موجی است خیلی شد به آسمون همه ی ستاره ها دونه دونه گل شدم مهربونی ایش نزنی نی آخریم تیکه ای جورچینی ایش مرابونی ایش نزنی نی آخریم تیکه ای جورچینی ایش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 مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تکیه این جورچینی ایش